بسم الله, بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم مرسیدن اگر امکان داره به صورت اجمالی وزایف مرد و زن با در خانواده نصف دیگر پیام این چیزی که عرض میکنم در مورد حق زن بر مرد و حق مرد بر زن گوزشته از اون دوست موردی که شرعن همه متلعید حساره آیات و روایات احرابید علیه السلام این هست اگر زن و مردی میخوان به خیر زندگی کنند، بچه های خوبی تربیت کنند، از مرد به زن مهربانی و از زن گذشت این دوتا پیامی هستش که پیام قرآنیه، پیام حضرت عمی است. اگر مرد بلد باشه با نوازش چشمی و نوازش کلامی با اعمال به قدری که لازمه افراد باشه که توقع ایجاد کنه برای خانم نه کم بذاره که اقده ایجاد بشه اگر بجا و به موقع محبت کنه حتما زن یاد میگیره که گذشت کنه این ارتباط متقابل داره با هم تا یه نکتی رو باید کنم حالا اینجا ها باید دقت کنم اگر خاانمون میخواد مسلط بشه در خانه و مردش رو اونجوری که حال بهضر خودمونونه ها میگن حید قاعده است اونجوری که دوست داره و صلاح خونه هست میخواد خونه رو به چرخونه مرد رو باید فرزند خودش ببینه این قاعده است دو تا داره، باید داره سو میش یه دونه داره توبو میشونه، قایده است. اگر اینطور برخورد کنه، حتما حتما موفق میشه و مسلط میشه. منطقه تسلوت الهی نه تسلوت ناجور. مرد ها قل دارم، پل دارم. اگر اینجور نسرم آمده. پدر دو اول فاز هوای زن تو داشته باشه کنفش نکن جلوی مرزوم جلوی بچه ها همیشه سر صفره بشونه خودت کنار بشین و الا زندگیت به هم بعد میکن من اینجوری نیستم من رهبرم تو خونه همی باید جایی بشینن که پایین دست من باشه من اشتسنام بلی بلی شما هم. خدا هم ایشونه بیام صلوات خدای بادی نم رحمت کنه رحمت الله علي. خیلی مزه بعد اصلا ایشون از گلیای خدا بود خیلی رشد کرده بود خیلی مراقبه اش قهوی بود هم دیگری که می دیدیم یه حالت رقصی به هر زمان دست می داد <تصفيق> بلا بود. خدا رحمتش کنه پرسیدن که خداقم بفرماید که اما خلاق دل جن چرا اصلا خدا ما رو آفایده دا بندش باشی خدای مطال این عبارت در دعای اول صحیفه سجادی است. حتما بخونید اون عبارت دی اول رو. خدای مطال حضرت میفرماد وقتی ما رو خلق کرد همه اون که لازمه زندگی ما بود رو به ما داده. رزق ما و همه اون بستری که برای حیات ما لازمه قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم برای ما خلق کرده. منتها بعد از خلق اراده کرده راه و طریق خودش رو که همین این عبودیت و بندگی هست این ما خلقت الجنه و در واقع هدف میانی هدف قایی و نهایی نیست این تریقی است که باید تایی کنیم و پیمایش کنیم هدف قایی و هدف نهایی می فرماید که الان سبیل محبته این طریق رو باید کنید اون هدف قواهی قربت و تقرب الهیه بزا همه عبادات ما رو شرط صحتش رو نیت گذاشته نیت چیه؟ مثلا امروز رو من روزی گرفتم قربتن الله نماز رو می کنم قربتن همه عبادات، شرط صحتش این هست که خدایا ما این عبادت رو به جا میاریم ابزاری بشه برای نزدیک شدن به تو برای کسب محبت تو هدف این هست ما محبوب خدا بشیم او هم محبوب ما بشه این دیگه اگه کسی بگه که چه شود معلوم میشه هست نداره بله پرسیدن اقوام حجاب رو هم به مرد بکنیم یا ننچگونه باشون برخورد کنیم اگر از ارهام هستن ولو به سلام اکتپا کنیم و تا ببینیم انشاء الله مجلس میخواد چیکار کار تا مجلس اینجا شول به شول حرکت میکنه امر مورو زندان که اجازهای کتک میزنن آفراد رو برمیگردن اینجا پرو شدن جهتشم این که قانون پشتیوانی نمیکنه. فعلا خیلی باید سکوت کرد. در مورد آرهام هم که خوب بلخواه ایام رفت آمد دیگه شروع میشه چند روز دیگه داره که بلا بسلام سلو آرهام کام بلا سلام علیکی یا علی ما می از شهر این سلام علیکی خلاسه این چنینی یه جایی بریم خواست بریم خدمت امیه سلام علیکی نجف یک ماه رو قسمت نشد من توفق داشتیم خدمت شما برسیم ده روز رو چه عملی در سرعت بخشیدن به تقرب اثر زیادی دارد؟ دوری از گناه خودمون رو در معرض گناه قرار ندادن این بهترین فسیله هست برای توفیق جبران مافاد چه کار کنیم؟ اگر ما عمل خوب انجام بدیم عمل بد همیش شستی میشه خود به خود از بین میره اندال حسنات یوته ابن سییاد آیه شریفه هست روایات خیلی زیاد داری که اگر کسی اهل خوبی ها بشه بدی های گذشته خود به خود شسته میشه فیل خدای مهربانی ندید میگیره بلکه از بین میبره یا آبم روش میریزه که از ازش یزش باقی گفتن که برای نماز صبح بیدار میشم ولی نمیتونم از در عقب کفلنشم من نزدیک تو دو افتادم. خیلی باید یه بار شروع کنه. یه بار شروع کنه درست میشه. کم کم. کسی میتونه اون رو بگیره بکشه از در خب بدون خودش باید یه تیکونی بخوره یا علی بگه ان درست میشه. در مورد این هجاب، یه سوال در ادامه فرمایشتون پرسیدن که اگر مسئول ایچ کار مردم چیکار باید؟ مردم باید مجتمع بشن، با آرامش برن، از مجلسی ها بخوان، از قانونگزاره بخوان، این کار رو انجام بدن. چرا بعضی از بنده ها در مسئله تقرب بدون زمین خوردن سعودی جلو میرن بعضی هم به فراز و نشیب دارن و نمیتونم به برن دلایل مختلف داره ولی یه دلیل اومدهش عادت‌هاست بعضی سبکن راحتن خیلی میلشون قوی نشده عادت نشده زودتر به هدف میرسن ولی دی زیاد اینجور نیستن میل شدید دارن هوا و هواششون زیاده دل نمی کنن فکر کنن همیشه قبراق و سرحال و جوان و گفتن برای فراز باید تمرین کرد. این مراقبه که پرماینس کردن در روایات آدم باید مراقب باشه با دست خودش خودش رو به گناه نندازه همین این مقدار مراقبه داشته باشه کم کم درست میشه اون یه قدمه رو باید برداریم تا اون ده قدم خدا حاصل بشه درست میشه خدا باید درست کنه این دعای شما که میخونیم خرمه که خوب هر روز صبح شد بکونیم بله حضرت میخوندن برای سلامتی مریض آجا دعا خواستم خدا انشالله همین محضا را خواست محضای منظور رو. چاپو اینو نشونه. ما که اگه حدیث کساء رو چند نفری هم بخونیم موثره یا حداقل جمع بشه. بله. بله. آیا می تونیم بگیم مشکلات و ناهمواری‌های زندگی آزمایشی الهیه؟ داستان رو بگید. اگر مشکلات به دست خودمون ایجاد بشه، اینا امتحان نیست. اما اگر دستمون نیست، نقصی پیش میاد، خداینا کرده یک مشکل مالی جانی پیش میاد این امتحان امتحان خدا غیر از امتحان معلم ساغرزه خدا عالمی به ما هست خودش خلق کرد میدونه عاقبتمون چه جوری هست امتحانش ایجاد فرصته یه ای فرصتی ایجاد میکنه ببینیم ما از این فرصت خوب استفاده میکنیم برای تعالی برای رشد یا نه میدونه که ما استفاده می کنیم یا نه رحمت برای ما این فرصتی ایجاد میکنه از این فرست استفاده کنیم مثل پدر پدر رو به اینکه پرزندی رو مثلا در سرما گرما در مواقع مختلف به درس و بحث و کار رو اینها مشغول میکنه هیچکس جور می برش نمیشه فرصت ایجاد میکنه میگه بچه جان برو و استفاده کن خدای متعال هم همینطور هست وقتی یه مشکلی پیش میاد اگر از خودمون نیست، بدون اختیار این مشکل پیش اومده باید صبوری و آرامش داشته باشیم از کنارش راحت بگذاریم این میگن امتحان خدا حدیث ایس ها رو گفتن اگر بدون حضور قلبم بخونیم ملااکه هفت بهمان ملااکه داره؟ قید حدرت. در خواست جنسیت برای بچه کار خوبی نه خوبه بعضی بیکاره فکر میکنم مثلا پسر داشته باشند چی میکنه اما هم پیسر مثلا دیگه خوباشونی چند مدتی بار مثلا یاد پدر مادر میکنیم دخترا چقدر خوبه دخترا؟ این موقع ما تحریف و بس مثلا بسی دختر و ها چقدر خوبه مایه های بند زادی داریم بی مادرش ککتو از اول منو دوست نداشت همش مثلا زهرا قاطنه که اینا رو همه رو قرمانه کردن عزیز دلم به من که میشن مستخونم هسته کوندی اینجوری را... نبود بازی درمی بود دختر هم قبل از اینکه از اسمون بیرون بره مستقل بشه خیلی خوبه خود جوشه خیلی مریضی ندارن دیدین بسرات هزار جور ناز دارن تا حضورت میشن خودشون درست میکنن هستن میان میرن هر مقاعدم میبینه خوشحال میشه خستگیش از در میره وقتی هم میرن سر خونه زندگی همطور به فکر پدر مداره هستن بعد از دو شما خود پدر امان بیشتر دختر به یاد هستن پسر ها میگه شب جمعه است که پاته بکنی خدا را حمد کنید پدر امان خدا رو حمد کنید پدر امان دیگه پرسیدن چیکار کنیم؟ کارهامون با اخلاس باشه و احراز خدا باشه؟ کارهای با اخلاس یعنی اینکه که ما کارها رو خلاص کنیم از غیر خدا عملمون رو نیازمون رو از غیر خدا خلاص کنیم هر چه غیر خدا هست بذاریم کنار این نمیشه با اراده حاصل نمیشه به مرور زمان وقتی انسان پا میکنه در دوری از مخالفت پرمان خدا خدا بهش یه هدیه میده اون هدیه اخلاصه خودشو تو دل بندش جا میکنه این کنتم تو هبون الله فتح به یه ببکون الله اگر میخواید که من تو دلتون جا بگیرم خدا میفرماید در برآن از من تبعیت کنید وقت من از اون طرف شما رو دوست خواهم داشت محبت فیدا کنم، به شما به دنبال محبت من شما محبت پیدا میکنم از این طرف نمیشه از این طرف فقط اطاعت کارمندان <متحدث> رو از بانک پانک مداب در مرز مسائل مالی پولی از چیکار چی کار کنم؟ دنیا و از های از بانک از ها خوب میرسن بهشم خواهم های خوب الهمدلله همشم خوب دارن بلیخاره کاری که توش مشکل هست و خوبه اگه بسنده کنن به همون مقدار هرس نوارزن درست میشه که حقوق که کارمند و پان تریافت اشکال نداره ده کنومد و فرزانده مستنید؟ نه قانون جمهوری اسلامی کار میکنن مشغول هستن که برای شبقت برای از گناه چه عملی بهتر بهترین عمل ترکی گناه و قراحت قرآن این دو کار خیلی توجه انسان رو به پروردگار متعال به اونچه منظور پیانبر خاتم پایمان هست تو مان کیس می گفتن که دل من خیلی میگیره فشار میاد معنویات و موقیت آرومش میکنه دوباره برمیگرده دلگیر میشه این قلاسه این برنامه در ارتباط با ادبار اقبال دل یا قلب امیر همان علی فرمودن که در کلمات هست است در جل بلاغه فرمودن فیزات برات وقتی دل پوش میکنه، کنید، فکر تسر و فرایز فقط از گناه دوری کنید و ازا موقع که رو میکنه با ادم و انسان حوصله داره، دلش مین داره به خوبی ها فهملوها علال، علال اونجا اضافه ها رو انجام بدید، اضافه بر واجب کاری اگر هست، انجام بدید این راهی شده انشاءالله خدا به همه من توفیق بده در مسیر حق حرکت کنیم به برکت سلوات بر محمد و آل محمد محمد